صلى على فاطمة وأبيها وبعالها وبنيها والسلف المستودع فيها بعدد ما أحاط به علمك اللهم صل على محمد وأول محمد وعجل فرجهم بسم الله الرحمن الرحيم یکی از فوائد استفاده از سیاهدانه درمان زکانه با سیاهدانه بعضی از دکترها مثل دکتر حسام شمس پاشا در کتاب درمان با سیاهدانه می نویسد جهت درمان نزله های یعنی آبریزش های ناشی از زکام که پشت حلق ریزش دارد یک قاشق غذاخوری روغن سیاهدانه را به آبجوش اضافه کنید و بیمار مبتلا به زکام بخار متساعد شده از آن را استنشاق کند برای اینکه استفاده بهتر بشه یه حوله یا پارچه یا پتو رو سرش میندازه بعد بخور میده و تنفس با بینی میکنه این عمل رو در 24 ساعت دوبار تکرار میکنه صبح و شب تا درمان زکان حاصل شود تو خوراکیا عسل رقیق شده صبحگاهی آب سیب شامگاهی و استنشاق با آب ولرم قبل هر وضوع زکام سریعا درمان می شود تب ناشی هست سرم هم از می رود اگر کسی فشارخون بالا دارد و فشارخونش هم نوسانی هست اینجا میتواند بیمار به طور مداوم از نعنا شمبلیله انیسون که با دیان رومیه و سبزی جعفری استفاده کنه در حالی که بر روی اینها هفت قطره روغن سیاهدانه اضافه میکنه یعنی سیاه که تو روغن زیتون جوشیده هفت قطره روغن سیاه دانه روی اینا میریزه میخوره روزانه سه بار بعد از وعده های غذایی استفاده کند و بیماری که فشارخونه نوسانی داره بدنش رو با روغن سیاهدانه چرک کن فشارخونه نوسانیش خوب میشه اگر کسی نارسایی کبدی ندارد ولی تنبلی کبد دارد تنبلی کبد برای تقویت فعالیت کبدی یک کیلوگرم یک کیلوگرم میوه انجیر را در دو لیتر آب بجوشاند سپس یک قاشق غذاخوری عسل خالص و هفت قطره از روغن سیاهدانه را به آن اضافه کند و صبح و شب به مدت یک هفته بخورد تنبلی کبدش خوب میشه اگر تصفیه کبد بخواهد اینجا چای سیاه دانه میخوره و در بین روز و اسرانه یک مشت برگه زردالو کشته میخوره کشته و برگهی که تیزاب نزده باشن خوش شدنش طبیعی باشه حالا با دستگاه هیتر برگی مؤمنون یا در مجاورت به وضع نسیم باد اگر کسی جایی رفته که اون محیط آلوده بوده به حشرات موزی مثل کنه مثل کک مثل شپش حال اگر خودش یا فرزندش مبتلا شد به شپش تو موای سرش یا تخبذاری کرد اینجا هر روز محل رو با سرکه سیب ماساج بده و صحب کنه این سرکا و روی پوست سر و جایی دیگه چی بشه؟ خوشه تا تخمای شپش و شپشک از بین بره در برخی روستاها گاهی شپش و شپشک در میان موی سر اطفال انتشار می‌یابد برای درمان چنین آرزه توصیه می‌شود. دیویس گرم سیاه دانه را آسیاب و پودر نموده با یک لیتر سرکه خوب مثلا چارپنگ لیوان سرکه خوب مخلوط نموده و از این ترکیب به دست آمده هر بار مقداری به سر میمالیم که به درون موها نفوذ کنه و پوست سر را فرا بگیره سپس تو معرض نور خورشید دوائیسه تا این محلول مخلوط روی پوست سرش خشک بشه این ترکیبی که گفتیم حداقل 5 پنج ساعت باید روی پوست سر بمونه سپس اون رو میشوریم این عمل رو هر روز تا یک هفته تکرار کنه شپش و شپشک و تخمه های شپش اینا همه از بین میره با صابون این معمولی ها شامپویای معمولی از بین نمیره اگر کسی بیماری قارچ کچلی دارد که عفونی واگیر یا اینکه بیماری گری دارد بیماری گری یعنی بیماری گل به اسطلاح فرانسویات و تخصصی پوست و مو تو روایات چیه میفرماید جرب جربه با تاسی فهم کنید. در تاسی یعنی اسلع با صاد. لام عین. با هم فهم. اگر کسی بیماری عفونی کچلی دارد و یا گری یعنی بیماری گال یا جرب دارد که نوعی از بیماریای قارچی پوست می باشد. می به طریقی زیر از سیاه بهره بگیریم. یک قاشق صوب خوری را که خوب آسیاب و پود شده با یک قاشق چایخوری از آساره سیر مخلوط می کنیم با یک فنجان سرکه رقیقم هم می خوب این مخلوط محلول قاطی هم بشه مرهمی که به دست آمد پماد ماننده و می آن را به قسمت های که مبتلا به گری و یا کچری از مالیده و پس از سه ساعت مرحم رو برداریم و با روغن سیاهدانه خالص چرب کنیم این روغن باشه اون قسمت ها تا روز بعد یعنی هر 24 ساعت یک بار می شوری. این درمان ادامه بدین بیماری کچری و بیماری جرب خوب می شود. یک قاشق سوپخوری خوری شد پودر سیاه دونه. یک قاشق چای خوری شد سیر له شده یا آثاره سیر. یک فنجان هم شد سرکه طبیعی سیب یا انگور اسکری. ایست طور خوب با هم قاطی می کنیم. از این پومات به محلهایی که گری یا کچلی میمالیم بعد از سه ساعت این مرهم رو بر می داریم و جاش رو با روغن سیاه دونه خالص ماساژ می دیم باشه تا فردا همین ساعت که دوباره دارو رو تکرار کنیم اگر کسی انواع کرک ها دونه های چرکی دان درش یا انواع دومل ها دارد حالا اینا دستورایی قبلا گفتیم صف از کن شیرابه انجیر مثلا جوهر سرکه اینا پوستم تخریب میکن یا مثلا اصل به اضافه برادی آهن به اضافه گوگرد به اضافه زرنیخ این چهار تا مخلوط بشه بذاری روی کورک دونه های چرکی بزرگ سری باز سر واز میکنی بعد برای تخلیه این چرک و روش زرچوبه خالص میریزیم و با این گاز استریلای غیر لوغنی روش میزنیم 24 ساعت یک بار این انجام میدیم حالا مبایست خودم بخواییم این کورک ها و دومن ها رو با سیاه دونه درمان کنیم یک فنجان از سیاه رو تو یک ظرفی میریزیم و روش سرکه قلیز سرکه قلیز میریزیم نظیر تهنشین سرکه ها و تعدادی از برگهای گیاه خرفه بقلت الزهرا، بقلت مبارکه، بقلت لینه گیاه مقداریم از برگهای خرفه روش میریزیم پا آسیاب شده است خوب هم می‌زنیم. به صورت خمیر در میاد اینه به صورت یک زمات روی تکه پارچه عبدیشمی گذاشته میزنیم رو محلی که دمله یا کورکه به مدت دو ساعت هر روز بر روی ناحیه دومل و کرک باشد کم کم دومل ها می شود و بهبودی حاصل می شود لازم نیست جراحیه موضعی کنین درمان لکوپیس یا بیماری بهق یا بهک و درمان برس یا بیماری پیسی ویتی با داروی سیاه وقتی که مقدار ملانین ملانین پوست کم می شود لک های پوست ایجاد می شود حتی حالت استرس شم می حالت نارتی روحی میگیره خودخوری می کن در پزشکی جدید درمان قطعی ندارن چیزای قطعی میکنن ممزوج متخصصین دارو شناس اما بعضی روایات مذهبی و همچنین نسخه های گیاهی درمان داره هم برای لکه های سفید هم درمان داره برای بیماری برست که هر چالایی پوس رو درگیر کرده چه بشره چه مالپیگی چه درم چه آندو مثلا در روایات شیه داره اینجا ماش بخوره تا لکهاش چی بشه؟ لکه های سفیدش خوب بشه حالا پلو ماش دوست داریم جوشانده ماش دوست داریم نظیر عدسی نه هست که در چیزهای دیگه به کار میره پس یکی ماش یکی ترکیب حنا با نوره با پاکتم با واجبی این هم گفته شده و مالیدن اونها روی لک و پیسی. نسبت نوره و حنا نسبت مساوی باش بعد از اینکه این, این محل رو از حنا و نوره شستی بعد از نیم ساعت یا یک ساعت باید آب ترب خام بنوشی آب ترب خام با سکنجبین بعضی ها این دوتا رو که با هم بخورن حالا تحوهشون میگیره زدن و استفراغشون میگیره حالا میتونن جای گذینش به جای سکنجبین آب لیموی تازه بذارم، آب تروب رو با آب لیموی تازه بخورن خون معنوم شد آقا این هم از باب زماد و یا خوراک پس ما میتونی با عنوان ماش. یا جود دم کرده ماش یا جوشانده ماش اینجوری بخوری و میتونی لیش کنی وقتی که پخ به صورت زمات بذاری روی محله پیسی بعد به نسبت مساوی، حنا با نوره رو قاطیه هم کنی رو محل بگذاری بعد نیم ساعت یا یک ساعت محل رو بشوری بعد مؤمن یک استکان تا یک لیوان آب رو بخام با سکنجه یا آب تراب بخوام با آبلی تازه بخور. اگر کسی علاوه بر پیسی حاشیه بزنی اگر کسی علاوه بر پیسی عفونت کلیه هم دارد اینجا این داروی دوم رو که آب تراب بود ها با آبلی تازه که خورد دوازه ساعت بعدش دوغه شیرین کمچرب بدون گاز نصف لیوان تا یک لیوان به اضافه نصف استکان آب تروب سفید تروب سفیده مثل خیاله؟ آب تروب سفید قاطی این دوغ شیرین چربه، بدون گاز کنه هم بزنه بخوره افونت کلیهاش هم خوب میشه این هم خشیه بدهیم به کتاب این مومن اگر مقداری ای که کوبیده نشده با مقداری ای که کوبیده شده این تا رو قاطی کنیم این رو با هم بخورن با اصل بسیار مفیده یا بخسونن توی سرکه بسیار مفیده با عنوان مرهم کسایی که حلال خورن میتونن با عنوان مرهم و زماد اگر مخلود کرده باشن با سرکه سیب میتونن رو موزه بگذارن با عنوان مرهم اشکال ندر اگر گل ختمی سفید رو بخیسانید و با جو شیرین خمیر درست کنید شبها به موزه سفید مثل محل لک یا پیسی بگذارین کم کم اینا از بین میرون باز چیزای دیگه هم هست تو بحث خوردنی ها مثل آش تمر هندی مثل آش گشنیز با آبخوره به شرطی که این گشنیز کم باشه مثل آب لیموتوش مثل آبخوره طبیعی مثل آلو بخارا مثل که خام مثل سمنات مثل برگ های قاضیاغی که قبلا گفتم تو درمان پیسی وقتی که تو برنج شلتوک دار دم بشه مثل بوییدن گل نرگس که چقدر فواید داره میگه هر روز تو روایاتشیه هر روز یا چند روز یا هر هفته یا هر ماه یا هر سال یا لاعقل امر یک بار گل نرگس رو بو کن چقدر فواید داره مومن ها یکیش اینه که جنون نمیگیری یکیش حالا یکی دیگه هم تو مباعثه ماست کسی بخواد لکه های سفیده سطحی پوست نگیره و یا اگر داره خوب بشان چه بیماری بهق چه بیماری پیسی هر روز گل نرگس رو بو کنه یا عطر طبیعی نرگس رو بو کنه یکی از چیزایی که در داخل و خارج کشور مبتلا هستن بحث سکسکه و انواع سکسکه است این هم چون مبتلا به اجتماع مؤمنان بنویسین یک کسی که عادت بد داره تントン غذا میخوره با عجله غذا میخوره یا کم جویده یا نجویده به قزو قورت میده اینا غالبا هم سردل میگیرن و ترشا و سرسوزه ریفلاکس هم یه بوسه حالا تو مباعث ما مبتلا به سکسکم میشن چون بخشی از غذا تو مری گیر میکنه و از باب المعده وارد معده نمیشه اینجا اینقدر سکسکه میزنه که به خاطر این انقبازات ازولانی قضا بره توی معده اینجا باید چیکار کنیم؟ درمانش چند قورت آب چند جرعه آب بنوشید و همیشه غذا را خوب بجوید و با آرامش و آهستگی غذا بخورید و برای غذا خوردنتون نیم ساعت وقت بگذارید شماره دو بعضی افراد سکسکه می و سکسکهشون ناشی از نفخ شدید و قرقره های زیاد معده و رودعیه اینه چکار؟ کنید؟ درمان چنین سکسکهی دم کرده عنیسون یا دم کرده گشنیس یا دم کرده راضیانه. رازیانه اگه خانومه مردا پسران رازیانه بخورن به خاطر اینکه زن سفت میشه رازیانه مال خانوما دخترا دم کرده زیره سبز دم کرده زیره سیاه. میتونه مخلوط اینها هم باشه میتونه به صورت داروهای مفرده باشه اینه قرقره کنه سپس قرت بده سکسکه ناشی از ازدیاد نفخ شکم و قرقره شکم یا رودهی چی میشه چنین سکسکه خوب میشه سوم، بعضی ازشان سکسکه میکنند به خاطر اینکه دندونشون مصنوعیه یا بعضی دندوناش ابیان رفته یا به همراه قضا هوا کورت داده در هر سه مورد سکسکه ناشی از بلع هواست. گاهی این مشکلات زبان کوچک دارن در اینجا چنین سکسکهایی رو با دم کرده مرزندجوش خوب میکنیم. پس چند جرعه مرزنجوش قرغره کنه قورت بده سکسکه ناشی از بلعه هوا خوب میشه بعضی از سکسکه دارن سکسکهشون ناشی از پرخوری و اشباع المعده اشباع معده روسیری باز غذا میخوره چند بیماری میاره یکی کنزهنیه یکی بیماری برست یا پیسیه که تو رو میگه حالا یکیش هم چیه؟ مبتلا به سکسکنش. سکسکیه ناشی از پرخوری باد شکم یا بالا آمدن غذا. وقتی که ای آب میخوره یه لقمه غذا میخوره یا قلب آب میخوره یا شربت میخوره یا نوشابه میخوره. یا پر شدن معده امتلاع معده چه اش چه امتلاع المعدة؟ اینا که روایات اومده. درمان چنین سکسکی چیه؟ خوردن شیوید خوردن شیبید به یکی از این سه صورت، به یکی از این سه صورت. اگر تازه بود یه مشت میخور، اگر خوش شدش بود یه قاشق مرغ بخوری پودرش میخور، اگر عرقش بود یه استکان عرق شیوید میخور، کافیه. سکسکه ناشی از پرخوری یا بادشکم یا امتلاع معده یا اشباع قضا در معده خوب میشه این مخصوصا برای کسانی که مؤمن چربی خون دارن یا کبد چرب دارن این شوید برای از همه بهتره در درمان چنین سکسکهی که گاهی ممکنه چندین روز طول بکشه مطلب پنجام اگر کسی افت کالری بدن دارد انرژی بدنش کمه و همچنین تو سوخت ساز بدن کم میاره یعنی افت متابولیسم بازاله یعنی سرد مزاجی دارد حالا سکسکه ناشی از سرد مزاجی و افت کالری بدن درمانش با چیه خوردن دارچین خوردن پونه, پونه. یا چای دارچینی غرغره کنه یا چای پونه غرغره کنه قورت بده سکسکه ناشی از ساعت مزاجی و افت کاداری بدنش خوب میشه اگر کسی ضعف اعصاب متوسط و شدید دارد و یا اینکه تنگی نفس اسر نفس سختی نفس و یا تنگی نفس ضيق نفس و آسم دارد سکسکه ناشی از این سه بیماری داروش چیه؟ یک کمی نعنا با مستکی خوراکی قاطی میکنه دوتا تاشو با هم میجوه سپس قورت میده دوم روزی دو عدد خورمالوی رسیده میخوره هم زد صرفای خوشکه هم ضد سکسکه ناشی از ضعف اعصاب و آسمه هفتون اگر کسی سکسکه هاش پونزده به بالاست و گاهی چندین روزه است یه بار یه مریض اومده بود پونزه شونزه رو سکسکه میکنم میگوه ها جادی حالم داره به هم این جام همه درد میکنم چه حسنیه صاحب زمان چرا شد اگر کسی سکسکه ناشی از گرفتگی عروق کرانر قلب دارد یک رک، دو رک، سه رک اون مویرگای ریزش هم برز تا 5 دو اگر گرفتگی عروغ کرانر قلب داره و سکسکه ناشی از چنین حالتیه. چی کار یک قاشق چای خوری. آب آبپز تخم کرفس یک قاشق چایخوری آب آبپز تخم کرفس در درمانه چنین سکسکهی بسیار مهمه و برای باز شدنه عروق ترونر قلب که دیگه تکرار نشه گرفتگیش هر روز به همراه نهار و شامش یک چهارم کاهو بخوره مثلا یک کاهو متوسط از بالا با چاقو چهار قسمتش میکنه یک چهارم با نهار یک چهارم با شام هر کاهو متوسطی دو روز میره بدون سس بخوره اگر مشکلات کبدی دارد مثل کبد چرب اینجا میتونه کاهو رو با سکنجبین و آنسالی بخوره اگر هپاتیت بی ویروسی دارد میتونه این کاهو رو با سکنجبین نعنایی بخوره. هم مشکل گرفتگی اروغ کرانه به قلب هم مشکل هپاتیت بی ویروسی حل میشه. شبا قبل از خواب حتما کرفس بخوره. چهار فائده داره. یک فایدهش چیه؟ یفتح و تمام رگهای گرفته بدن از جمله رگهای شریان اصلی به ازاله قبل چی میشه باز میشه دعاشو به جون امام صادق علیه صلات و سلام کنین مطلب هشتون اگر کسی سکسکه ناشی از کم اشتهایی و سوء تغذیه دارد چیکار کنیم کم اشتهای بچه یا این شخص زیاد بشه هم سکسکه اولین بیارد افشوره ترخون افشوره ترخون رفع سکسکه ناشی از کم اشتهایی و سوء تغذیه میکنه مطلب نهم اگر کسی ترشا دارد پوده میکنه تخمه میکنه و سکسکه ناشی از ترشا و تخمه و پوده داره داروش چی مؤمنه انجدان عربا میگن انجدان رومی با جیم ایرانی ها میگن انجدان انجدان یا انجدان را ببوید و بخورد بویدن انجدان و خوردن انجدان درمان سکسکه ناشی از توخمه پوده و ترشد تو مناطق سوریه حتی پودرشی میفروشن توی این قطعه یک کلوی تا پنک کلوی کاری تو عربستان این پنج کلوی هاش میارن نفروشن مطلب دهم تو ایران خودمون هم هست از دارالخونه امام فلکی بیمارستان امام رضا کن قربون امام رضا هم دنیا هم آخرت مطلب دهم اگر کسی ازدیاد اسید معده دارد و حالت آلارم کاذب گیرنده اچ جداره داخلی معده داره و ترشوه اضافی اسید معده به نوع اسید می شود همچنین حالت تهوع، اوق زدن و استفراغ دارد به نوع ریفلاکس ضعیف یا ریفلاکس متوسط یا ریفلاکس شدید حال برگشت اسیدش به مری، اسید معده به مری، گاهی بدون غذاست، گاهی توام با غذای معده است همه این سه صورت به اضافه اگر سرسوزه معده هم دارد یعنی بیماری هارت در منطقه اپیگاستر هم دارد سکسکه ناشی از اینها رو با چی درمان کنیم؟ سکسکه ناشی از ازدیاد اسید معده و ریفلاکس که برگشت اسید معده به مری و سرسوزه معده یک بو کردن سیب معتر حالا سیب معتر قرمز لبنانی یا سیب معتر گلاب خراسان و جویدن و خوردن سیب درختی شیرین رسیده مخصوصا بعد از غذا یک عدد اگر یوبوست یا نفخشی کم داری یه استکان آب سیب تازه بخور دارو اول دارو دوم چیه؟ خوردن سیب زمینی آفست بعد از غذا یک عدد متوسط باشه کافیه وقت نداری پوست سیب زمینی بکن با قاشق بتراش یه قاشق پلوخوری پیوره سیب زمینی بخور بلافاصله اسید معدهت خاموش میشه سرسوزد معدهت هم خوب میشه سکسکهت قطع میشه مخصوصا اگر کسی ناموسش مثلا ویار شدید دارد ماه دوم و سوم حاملگیه اینجا سوسنبر برگهای سوسنبر قبل از غذا به جو بخوره بعد از غذا این پیاره سیب زمینی حرف اول میزن یکم از این زعیفتر سیب درختی یک کم از اون زعیفتر عرق نعنا خب تا اینجا ده مورد درمانهای متعارف گفتیم در درمان سکسکه که یک رفلکسه اما درمانهای غیر متعارف هم یازده مورد ذکرن، درمان های غیر متعارف سکسکه یک ب کردن برای کسی که پرخوری کرده یا غذای مونده خورده، یا فستفودها یا غذا صنعتی خورده بهترین دارو در درمان این نوع سکسکه های ناشی از این سه چیز چیه ؟ استفغ پیدا کردن دوم قلتیدن رو زمین مثل که حالش بدیم از این برای اتاق بقلته بریم بازد این برای بقلته بریم اینا درمان های نامتعارف خونه خوش سکسکش قطع میشه بعضی از این اقسام قطع فقط تو ناراحتیای های قلبی ها و اونی که ریفلاکس شدیده این کارو نباید انجام بده در این دو مورد اما موردهای قبلی اشکال نداره سومین مورد غیر متعارف فریاد کشیدن جیغ زدن به خاطر دارو سکس که قطع میشه در کسانی که نارسایی گلو و ابتدای مری و یا هوا رو قورت دادن به همراه قضا اینا ما منا سکسکشون قطع میشه چنا باشی یه کسی سینه‌ای چرا حجی سینهش قاتی شده این من فریاد کسیدن چهارم خشم آمدن مثلا این طرف دائما داره سکسکه میکنه به شرطی که ناراحتی اعصاب و ناراحتی قلبی نداشته باشه در غیر این دموره حالا خون این شخص رو به جوش بریم علیکی اصابانش کنیم سکسکهش قطع میشه گرفتیم مومنه چی میگن؟ پنجم سکسکه داره غیر متعارف حالا یه معتبه اینو شادش کنی شادی و تراوت زیاد مثلا هم فرض کن هشتش گراه نه کفکیر به تایدیگ خورده یه قرون طول هم تو جیبش نره. حالا شما یه معتبه میگی بیا این عیدی میتولد ای مولا صعاب از زمان هشتاد و پنیزارات من چیه حاجه بیا یه چک یک میلیونی <تصفح> این بال در میاره دیگه مومن ها. بال در میاره سکسکش قط میشه شون وقت به هم ریخته بود مومن یا یه چیزایی که شادی آور طبیعیه میتونی در اختیارش بذاری مثل چی مومن ها؟ تو چیه. مثل انگور سیاه مثل مویز اینا رفع هم مقم میکنه خب؟ یا تو تب مکمل و گیاهیه مثل شربت زعفران عسل. اینا شادی و ترابت طبیعی میاره سکسکش هم قطع میشه درمان های نامتعارف میگم ها. اینا تو کتاب ها شیشم طرف رو مومن یه معتره به ترسونی به شرطی که ناراحتی احصاب نداشته باشه بیماری هیستری یا بیماری وحشت نداشته باشه ناراحتی قلبی هم نداشته باشه که زهر ترک نشه یا سنگ کوب کنه به شرطی که این ستار رو نداشته باشه یکی از درمان های نامتعارف چیه یه معتر به اونه به چیشون مومن ها؟ ای داد وی خانه خراب شد ایتبیل اگر با خون دل پیروپاتار شده حالا تازی قلکی خریده حالا تا بشنبه خونش خراب شده دلش هردی میریزه سکسکش قطع میشه و این بچه های اصلا بازی گوشه نگه قابا میذارن قابایی رحشت نمیدن به صورتش بهترس حالا این هم تو کتاب ها هست ناگهان ترسانیدن ولی یادتون باشه نارحتی قلبی نداشته باشه ناراحتی عصبی نداشته باشه بیماری هیستری یا بیماری وحشت نداشته باشه در غیر این سمورده اینم یک درمان نامتعارف هفتم از درمان های نامتعارف قرن زیاده غم زیاد مثلا این شخصی بوده خودکاره مثلا شخصی بوده علکی خوش علاف به هر کیم هم میرسیده تیغ میزده از پدر از مادر از افراد همسایه تو هر جا که تیغش بباره تنبله تنپروره عیاش بوده حالا از ولنگاری و پرخوری و لم دادن سکسکش زیاد شد حالا باید اینو چیکار کنیم این باید درست عکسش عمل کنیم یعنی ایجاد غم زیاد براش به عنوان یک شک طبیعی گرفتیم مومن چی شد؟ مثلا بهش بگیم امو جون میرونی چی شده همین هم امروز برات، هم این, این کاغذی ازس برق و آب و گاز و این تلفن و اینا میاد مثلا اینا همه این کاغزا برات اومده سرویس مدرسه هم میبرن چند صد هزار تومان میخواد این معاصر من میبرن 500 600 هزار میخواد اینکه چند تا این چیزا ردیف صاب صابکنم اجاره خونهشو دو برابر کردن یک مدرسه تمام سیبیلاش آویزا میشه یعنی شادیاش ناب میشه تا قم بهش گره با سکسکش قطع میشه قبلش تن بود الکی خوش علاف بودن اینم مال غم زیاد برای کی ایجاد می‌کنه برای کسی که سکسکه زیاد داره و سکسکهش ناشی از تن پروری و پرخوری و لم دادن و تیغ زدن اینونه یعنی اهل کارنی تصادف همدی مومنا بعضی همین جورن مومنا چه دوران پسریشون اینا باشه چه بعد از ازدواج باشه چه تا آخر عمر باشه مثلا حالتش اینه حالتش این هی منتظر یکی مثلا دلنگون بشه بمیره زود ارسش تک بزن حالتشون اینه سعی یکی یه پاداشی گیرش بیاد زود تک بدانه پاداشی بکن اکثر اینا حرومخوری هم مد دارن سعی یکی مرد همه ارس میگیره بالا میکشه بیه یک اخواه بردار ارس نفت من از این افراد گایی مراجعه میکنم این بدبختی دي برای این افراد باید غم زیاد بذارید و یک کم باید کار ازشون بکشیم که به تن پروری و عادت نکنن گاهی مؤمنا از درمان های نامتعارف چیه آب سرد به صورت شخص بریزید آب سرد به صورت شخص بریزید کسی که کالری بدنش بیش از تراز سنیشه سن مثلا جوان و نوجوان باید 2200 باشه حالا رفت 2400 500 اینا شما آبسد یه معطبی در صورتش سکسکش قد یا پیرمردی که باید مثلا کالری بدنش 1700 باشه اومده 2000 تو رو چیکار نوجوان که فیگور نوجوانه بگیره خب سکسکش زیاد میشه حالا یک دهمان نامتعارف چه یه معطبی آبسد بیزیم در صورتش اسباب دهمانه از باب اذیت باشه حرامه اذیت مؤمنین مؤمنات حرامه یکی دیگه از درمانهای نامتعارف سکسکه چیه مومنا؟ بره از سواری تلقه تلقه تلقه تلقه سکسکهش خوب میشه یکی دیگه از درمانهای نامتعارف سکسکه چیه؟ عدسه مثلا پودره کنداش یکی نفس باشه 5 شیش تا عدسه سکسکه قط میشه. یا بینث بعضی پیرمرده قدیم بودن یه پرو می داشتن یا یه پنبه قلقلک می بینیشون چند تا چندتا میزن. یا از تو سایه یه مطبه بری تو نور و آفتاب و چشمات ببندی خورشیدو رو نگاه کن و چشم از تو سایه مطب بری تو آفتاب عدسه میگیره گیره. سکسکه هم قطع میشه. پس عدسه طبیعی یا عدسه نامطعارف ایجاد کنید تا که توضیح دادن به سه مادل. بعضی از اقسام سکسکه ها میشه دیدیم مومنان؟ اینم درمان نامت با عدسه کردن یازده یکی از درمان های حبس هوا در ریه حبس هوا در ریه نگه داشتن هوا در ریه بازدم سریع نباشه نفس بگش نفس رو نگه دار یه مقدار نگه میداری بعد نفس بازدمت رو برگردم. عدسه هم قطع میشه باز درمان های نامتعارف دیگه بود بعضیش دیدم خیلی زشته قابل گفتنی. اما از برای تحقیق میتونید به کتاب گلچین جامعه گیاهان دارویی و عطاری ایران محقق و پژوهشگر توانا دکتر فریبرز معتر و دکتر مرتزا صفایی یکیش استاد دانشگاه تهرانه. و آن دیگری عضو فرهنگستانه دارو دانشگاه تهران اینا رو مطالعه کنین اللهم صل علی ادم محمد و محمد, محمد. محمد. محمد. محمد. محمد.